داستان اشنکوف تو روزگارای قدیم پیرمردی زندگی می کرد که یه پسر داشت. پیرمرد پسرش رو خیلی دوست داشت. اسم پسر پیرمرد پیتر بود. اما اونها ام خیلی فقیر بودن و به سختی زندگی خودشون رو می‌چرخوندن. بالاخره یه روز پیرمرد تو اثر بیماری افتاد و شرایط زندگیش خیلی بدتر از قبل شد. پیره مرد پسرش رو زد و گفت پسر عزیزم حالا دیگه امروز هیچ غذایی برای سیر کردن شکمت ندارم تو باید دنبال کار بگردی حالا هر کاری که باشه مهم نیست اما فراموش نکن که اگه توی کارت کوشا باشی و تلاش کنی و به اربابت وفادار بمونی این کارتو بدون عجر نمیمونه روز بعد پیتر یه تیکه نون توی کوله پشتیش گذاشت و اون رو روی دوشش انداخت یه چوب دستی هم برداشت به دنبال سرنوشت خودش خونه رو ترک کرد. اون ساعتهای طولانی توی جنگل راه رفت و راه رفت. بین راه به هر کجا که می رسید، به هر کی که می رسید، سراغ کار رو میگرفت. اما کسی نبود که بهش کاری رو معرفی کنه. توی همون روزها یورش توی مسیر پیتر با یه پیرمردی مواجه شد. به نشانه احترام کلاهش رو از سرش برداشت و گفت: صبح بخیر پدر. پیرمرد جواب داد: صبح بخیر پسرم. راهی کجایی؟ پیتر جواب داد: راستش دنبال کار می‌گردم. پیرمرد بهش گفت: اگه اینجوریه پس پیش من بمون. کلی کار دارم که تو میتونی انجام بدی. پیتر خیلی خوشحال شد و تصمیم گرفت که پیش پیرمرد بمونه کارش خیلی سخت نبود چون پیرمرد دوتا اسب داشت و یه رسم گاو داشت که باید از اونها نگهداری میکرد هرچند که پیتر به مدت یک سال استخدام شده بود اما سال اون بیشتر از روز طول نکشید در نتیجه خیلی زود دستموزش رو به خاطر روز کار کردنش گرفت وقتی که پیرمرد دستمزد اون رو میداد گفت پسرم این یه فندق رو هم به مدت یک سال پیش خودت نگهدار اما پیتر که دلش برای خونه و خونوادهاش تنگ شده بود و از اونجایی که دست هم همین یه دونه فندق بود با خودش گفت همه جا پر از فندقه من میتونم هر قدر که دارم خواست جمعآوری کنم اما اون این حرفها رو توی دلش میزد چونکه پیرمرد خیلی بهش محبت کرده بود و بالاخره پیتر از پیرمرد خدا حافظی کرد و راه خونش رو در پیش گرفت. هر چقدر که به خونش نزدیک تر میشد، به خاطر دستمز ناچیزی که گرفته بود از خودش خجالت میکشید. اون با خودش گفت: « این فندوق به چه درد من میخوره؟ نمیتونم اون رو بفروشم و پولی ازش به دست بیارم و باهاش گوشت و نوم بخرم. نه کار دی ای میتونم باهاش انجام بدم. به خاطر همین، روی تخت سنگ نشست و پوست فندق رو با دندوناش شکست تا مغزش رو بیرون بیاره. اما کی میتونست حدس بزنه که چه چیزی از توی اون فندق قرار بیرون بیاد. وقتی پیتر پوست فندق رو با دندونش شکست، یه دفعه تعداد زیادی گوسفند و گاو و اسب انقدر شتاب زده از داخل فندق بیرون اومدن که انگار میخواستن خودشون رو با عجله به دنیا برسونن. پیتر هاج و داشت به این منظره نگاه میکرد. با این همه حیوان چهارپا چیکار کار میتونست بکنه؟ پیتر وحشت زده باشه یه سر جای خودش میخکوب شده بود. همون موقع بود که اشنکف از راه رسید. اون از پیتر پرسید موضوع چیه؟ پیتر جواب داد خیلی چیزا اتفاق افتاده. من به عنوان دستمز یه فندق از سابکارم گرفتم. اما وقتی اون رو شکستم این همه حیوان چارپا از توی اون بیرون اومدن حالا من نمیدونم با این همه اسب و گاو باید چیکار کنم اشنکو گفت خوب گوش کن پسرم اگه قول بدی که هیچ وقت ازدواج نکنی من میتونم همه اونها رو دوباره داخل فندق برگردونم پیتر که بچجوری توی دردسر افتاده بود خیلی زود درخواست اشنکوف رو قبول کرد و جواب مثبت بهش داد و اون مرد غریبه با یه سوت همه یه رو به داخل فندق برگردوند. زمانی که آخرین حیوانم با پای خودش داشت وارد فندوق می شد پوست دونیم شده فندق دوباره بسته شد. بعد هم پیتر فندق رو دوباره توی جیبش گذاشت و به طرف خونش براه افتاد. اما تا پیتر به خونش برسه فندقش دوباره شکست و یه بار دیگه هم اسبا و گوسفندا و از سوی اون بیرون اومدن این دفعه پیتر متوجه شد که بعضی از اونها خیلی بیشتر از دفعه قبلا پدرش از دیدن این همه اسب و گاو و گوسفند مقابل خونش تعجب کرده بود پیرمرد بیچاره از شدت تعجب زبونش بند اومده بود با کلمات بریده بریده به پسرش میگفت تو چجوری این کارا رو انجام میدی؟ و پیتر همه ی رو برای پدرش تعریف کرد و همینطور قولی رو که به اشن داده بود. روز بعد بعضی از اونها رو به بازار برد و فروخت. پیرمرد با پول اونها تونست چند قطعه از مزاره و باقهای دور و اطراف خونش رو بخره و طولی نکشید که اونا سروتمند پشبخت افراد اون منطقه شدند. حالا دیگه به هر چیزی که دست میزدن طلا می دادن شد. یه روز؟ پدر و پسر گوشه ای از مزرعشون نشسته بودند و گله های خودشون رو تماشا می کردن. پیرمرد به پیتر گفت: حالا دیگه وقت اون رسیده که ازدواج کنی و سر و سامون بگیری. پیتر جواب داد: اما پدر. من به اشنکوف قول دادم که هرگز ازدواج نکنم. پیرمرد دوباره گفت، این حرفا چیه؟ حالا تو یه حرفی زدی، بهتر فراموشش کنی. اگه اشنکوف راضی به ازدواج کردن تو نیست، باید همش مراقب تو باشه. به علاوه، توی استعب یه اسب خاکستری زین شده. که اگه اون این طرف آفتابی بشه، تو میتونی خیلی سری سوار اون اسب بشی و به سرعت باد از اینجا دور بشی. وقتی هم که آبا از آسیا افتاد میتونی دوباره برگردی خلاصه پیتر با دختری گندمگون ازدواج کرد همه اهل دهکده تو مراسم ازدواج اون شرکت کرده بودن مردم سرگرم جشن و رقص و پایکوبی بودن که رفع اشنکو از راه رسید و از پشت پنجره به داخل اتاق سرک کشید به پیتر گفت چه خبره پسر؟ مثل اینکه جشن ازدواجه فکر کردم که نکنه دارم خواب میبینم چون تو به من قول داده بودی که هرگز ازدواج نکنی اما پیتر منتظر تموم شدن صحبت های اشنکوف نشد بلافاصله فاصله با سرعت خودش رو به استفد رسوند و پشت اسبش پرید چهار نل به طرف کوهستان تاخت اشنکوف هم مثل برق دنبالش میدوید توی این تقیب و گوریزا اونا از یه جنگل انبوه از بالای تپه ها و رودخانه های خروشان و از سرزمینه زیادی گذشتن تا اینکه پیتر دم در کلبه پیرزن رسید. از اسبش پیاده شد و گفت روز بخیر مادر پیرزن جواب داد روز بخیر پسرم تو این طرف دنیا چیکار میکنی؟ پیتر گفت مادر خواهش میکنم به هم کمک کن من برای نجات جون خودم از دست شنکوف سر از اینجا درآوردم اون داره من رو تعقیب میکنه پیرزن گفت، بیا تو پسرم بیا تو کمی غذا بخور من یه سگه نگهبون دارم که اگه اشنکوف چند کیلومتر هم از اینجا فاصله داشته باشه باز بوش رو حس میکنه و زوزه میکشه بنابراین پیتر با خیال آسوده داخل کلبه پیرزن شد بعد از اینکه یه مقدار غذا خورد و خستگی در کرد یه دفعه سعی پیرزن شروع به زوزه کشیدن کرد پیرزن فریاد کشید زود باش پسرم خودت رو نجات بده پیتر مثل برق از به خارج شد به طرف اسبش رفت اما قبل از اینکه سوار اسبش بشه پیرزن از پشت سر صداش زد و گفت سب کم پسرم این دسمال و این کلوچه رو بگیر و توی کوله پشتید بذار پیتر دستمال و کلوچه رو از پیرزن گرفت و توی کوله پشتیش گذاشت بعد هم از پیرزن تشکر کرد و مثل باد از اونجا دور شد پیتر دوباره از های انبوه و های عریض و خروشان گذشت از قلمروی هفت پادشاه هم گذشت و بالاخره دم در یک کلبه دیگهای رسید پیرزن اینجا نشسته بود پیتر دوباره سلام کرد و گفت روز بخیر مادر پیرزن هم جواب داد روز بخیر پسرم تو این طرف دنیا چیکار میکنی پیتر گفت ما در کمکم کن من برای نجات جون خودم از دست اشنکوف سر از اینجا در آوردم اون داره منو تعقیب میکنه و پیرزن پیتر رو به خونش دعوت کرد بعد از اینکه پیتر اونجا استراحت کرد و غذا خورد پیرزن گفت من اینجا یه سگ نگهبون دارم اگه اشنکوف چند کیلومتر هم از اینجا فاصله داشته باشه او شروع میکنه به زوزه کشیدن. حالا روی این تخت دراز بکش و راحت و با خیال آسوده استراحت کن. اون وقت پیرزن به طرف آشفازخونه رفت و چند تا کلوچه آورد. هنوز پیتر همه کلوچه ها رو نخورده بود که سگ پیرزن شروع به زوزه کشیدن کرد. پیرزن فریاد کشید و گفت زود باش پسرم تو باید هرچی زودتر از اینجا دور بشی اما قبل از رفتن باقی این کلوچه ها و این دستمال رو هم توی کل پشتید بذار. پیتر از پیرزن تشکر کرد و به سرعت سوار اسبش شد و از اونجا دور شد. پیتر دوباره سرزمین های زیادی رو پشت سر گذاشت و آخرش به کلبه پیرزن سوم رسید. این پیرزن هم مثل اون دوتای دیگه به گرمی از پیتر استقبال کردن. اما تا سگ نگه این پیرزن هم، شروع به زوزه کشیدن کرد، پیتر روی اسبش پرید تا از اونجا هم فرار کنه. پیرزن سوم هم به پیتر یه دستمال و یه کلوچه داد. بهش گفت، حالا تو سه تا کلوچه و سه تا دستمال داری. چون من میدونم که که دوتا از خواهرای منم هر کدومشون به تو یه کلوچه و یه دستمال دادن. حالا به حرفایی که میزنم خوب گوش کن. تو باید هفت شبانه روز، با عصبت بتازی و بدون توقف راه بری. اما روز هشتم تو در برابر یه آتیش بزرگ قرار میگیری. با این ستا دستمال که پیشت هست سه تا ضربه به آتیش میزنی و اون وقت آتیش از وسط شکاف برمیداره و تو میتونی ازش رد بشی. اما موقعی رد شدن از وسط آتیش اون دا کروچه رو با دست چپت میندازی پشت سرت. پیتر با دقت هر فایف پیرزن گوش میکرد و بعد هم ازش خداحافظی کرد و حواسش رو جمع کرد که درست عین گفته های پیرزن عمل کنه روز هشتم بود که پیتر در برابر خودش همون آتیش بزرگ رو دید وقتی با اون دستمالهاش روی آتیش میکوبید آتیش از وسط به دو نیم تبدیل شد در حالی که دیواری از آتیش در طرفین این پیتر قرار گرفته بود پیتر از وسط اون آتیش گذشت و هم پشت سرش انداخت بعد از اینکه پیتر کلوچه ها رو انداخت از سوی هر کدوم از اون کلوچه ها یه سگ بزرگ بیرون پرید که پیتر اسم اون سگا رو تیزگوش آهنین و سنگین بزن گذاشت سگا به محض دیدن پیتر دم خودشون رو تکون دادن همون موقع پیتر اشنکف رو هم اون طرف آتیش دید اما خوشبختانه اون شکافی که پیتر ازش عبور کرده بود دوباره با شعله‌های های آتیش پوشونده شد و اشنکوف نتونست ازش رد بشه. اشنکوف صداش زد و گفت ای پیمان شکن این دفعه از دستم در رفتی اما مطمئن باش که بالاخره تو رو گیر میارم. بعد هم نزدیک آتیش روی زمین دراز کشید تا ببینه که چه اتفاقی میفته. وقتی پیتر خیالش از بابت اشنکوف راحت شد به راه خودش ادامه داد. و آقابت مقابل یه خونه ای رسید که در و دیوارش سفید بود پیتر وارد خونه شد تو یکی از اتاقهای اون خونه پیرزنی رو دید که سرگرم نخریسی بود و کنار پنجره هم یه دختر زیبا سرگرم شونه کردن موهای تلایی رنگ خودش بود پیرزن از اون پرسید پسرم چطور شده که سر از اینجا در آوردی؟ پیتر جواب داد من دنبال یه سرپناه میگردم پیرزن دوباره گفت اتفاقا منم به یه خدمتکار احتیاج دارم. همینجا پیش من بمون. پیتر با خوشحالی جواب داد. خیلی ممنون مادر. با کمال میل حاضرم. بعد از اون ماجرا پیتر با خیال آسوده و با شادمانی زندگیش رو توی خونه پیرزن شروع کرد. اون صبح تا غروب به کارش توی مزرعه مشغول بود. گاهی وقت هم همراه سکهاش به شکار میرفت هر نو شکاری رو هم که میدید سید میکرد. دختر موطلایی خیلی خوب میدونست که چجوری باید اون شکارها رو بپزه و غذای خوشمزه‌ای باهاشون درست کنه. یه روز پیرزن به شهر رفته بود تا آرد بخره و پیتر و دختر موطلایی توی خونه تنها بودن. اونها با هم صحبت میکردند. دختر موطلایی از پیتر پرسید: "خونت کجاست؟ چجوری تونستی از توی آتش رد بشی؟" پیتر همه ی رو از اول تا آخر برای دخترک تعریف کرد و همینطور موضوع اون ستا دستمار رو هم که باهاش به آتیش زر زده بود رو هم تعریف کرد. دخترک متلائی با دقت به حرفای پیتر گوش می کرد. اما نمی تونست اون صحبت ها و حرف رو قبول کنه. بنابراین وقتی پیتر سر مزرعه رفت، دخترک متلائی یواشکی توی اتاق پیتر رفت. دستمال ها رو برداشت و با سرعت خودش رو به اون آتیش رسوند. وقتی اون با دستمال ها تا ضربه به آتیش زد شوله های آتیش از وسط دوباره شکاف برداشتن. و اشنکوف اون طرف آتیش نشسته بود و منتظر همچین فرصتی بود. بلافاصله از وسط آتیش عبور کرد و در برابر دخترکی ایستاد دخترک بیچاره با دیدن اشنکوف وحشت کرد و بلافاصله به سمت خونش دوید. هم اون رو تغییب میکرد. دخترک نفس نفس زنان خودش رو به خونه رسوند و کف اتاق نقش زمین شد. و بالاخره اشانکوف هم دنبال اون وارد اتاق شد و خودش رو گوشه ای از آشپزخونه مخفی کرد. بعد از مدتی پیتر وارد خونه شد و ستا دستمال خودش رو که جلوی ورودی در خونه روی زمین افتاده بود دید و برداشت. اون از دیدن دستمالهاش روی زمین خیلی تعجب کرده بود. اما وقتی که دوشیزه یه رو هم دید که کف اتاق افتاده، فکر کرد که مرده. پیتر دخترک رو از روی زمین بلند کرد و اون رو روی تختش خوابوند. بعد از مدتی دخترک به حوش اومد. اما موضوع دیدن اشنکف رو نتونست به پیتر بگه. صبح روز بعد پیتر تنها به جنگل رفت. سکهاش هم همراه خودش نبرد. اشنکوف به محض دیدن اون پشت سرش حرکت کرد و او رو می میکرد. پیتر بالای یه درخت رفت. اشنکوف صداشتد و بهش گفت بیا پایین اینکه تو مستحق مرگی. مگه اون قولی رو که به من داده بودی فراموش کردی؟ پیتر جواب داد بله، حق با شماست. اما قبل کشتن من اجازه بدید که من سه بار فریاد بکشم. اشنکوف جواب داد به تو اجازه میدم صد بار فریاد بکشی حالا دیگه راه فراری نداری و چند لحظه بعد کشته میشی همون موقع پیتر فریاد کشید آهنین، تیزگوش، سنگین وزن لطفا کمکم کنید تیزگوش بلافاصله صدای اون رو شنید و رو کرد به و گفت شنیدید؟ اربابمون داره صدا میکنه سنگین وزن جواب داد تو داری خواب میبینی. کسی ما رو صدا نمیکنه. به علاوه اون هنوز سوگونش هم نخورده. بعدش هم سنگین با پنجه قوی خودش سیری محکمی تو گوشه برادرش تیز گوش زد. پیتر دوباره اون رو صدا زد. سنگین تیزگوش آهنین عجله کنید من به کمکتون احتیاج دارم. این بار هم سنگین وز صدای پیتر رو شنید و گفت بله درسته. ارباب داره صدامون میزنه. آهنین دوباره گفت تو هم که عقلت رو از دست دادی. این ساعت صبح ارباب همیشه داره صبحونه میخوره. این بار آهنین که بزرگترین برادر بود با پنجش سیری محکمی به گوش سنگین وزن زد. پیتر بالای درخت بود و انتظار میکشید. پیش خودش فکر میکرد شاید اونها صداش رو نشنیده باشن. این بود که برای سه بار هم رو صدا زد. آهنین، سنگین وزن تیز گوش، لطفاً کمک هم کنید. این دفعه آهنین هم صدای اون رو شنید و گفت بله درسته، ارباب داره صدامون میزنه، باید فوراً به کمکش بریم. اونها با یه یورش ناگهانی در اتاق رو شکستند و خارج شدن. هر ستاشون به سمت صدا میدویدن. وقتی پای درخ رسیدن، پیتر به اونها رو گفت اونو بگیرید. سرکان بلا فاصله به طرف اشنکوف حمله کردن و توی چشم به هم زدن رو گرفتن و کشتن. بعد از کشته شدن اشنکوف، پیتر از درخت پایین اومد. به خونه خودش برگشت. بعد هم از اون پیرزن و دوشیزه متلایی خداحافظی کرد. پیرزن و دختر متلایی بهش یه حلقه انگوشتر با نگین دادن. البته این انگشتر قدرت جادویی داشت. پیتر و دوشیزه متلایی از این موضوع با خبر بودن. وقتی پیتر سمت خونه با زادگاه خودش برگشت، دلش خیلی گرفته بود. چون درست شب عروسیه، همسرش رو ترک کرده بود. و حالا به اون دوشیزه متلایی دل بسته بود و دیگه علاقه ای به همسرش نداشت. اما کار از کار گذشته بود. کاری از دستش بر نمی اون باید مثل سابق از بین شعله های آتیش میگذشت. یه بار دیگه اون سه بار دستمان خودش رو تکون داد و خیلی زود شعله های آتیش کنار رفتن. ولی اون لحظه اتفاق عجیبی افتاد. ستا سگی که پشت سرش حرکت میکردن یک باره تبدیل به سه تا کلوچه شدن. پیتر هم اونا رو همراه دستمانش توی کوله پشتیش گذاشت. پیتر یه بار دیگه دم در کلبه اون ستا پیرزن توقف کرد و کروچه ها و دستمال های هر کدوم رو بهشون پس داد. وقتی پیتر به خونش رسید از پدرش پرسید همسرم کجاست؟ پیرمرد جواب داد تا حالا کجا بودی پسرم؟ بعد از اینکه تو رفتی همسرت خیلی سختی و فلاکت کشید. نه چیزی میخورد و نه کاری انجام میداد. روز به روز یه شم آب میشد تا اینکه یک ماه قبل فوت کرد. پیتر با شنیدن این خبر شروع به گریه کرد چون قبل از ترک کردن خونش و دیدن اون دوشیزه مطرایی همسرش رو خیلی دوست داشت. بعد از اون ماجرا پیتر شش ماه سوگوار همسرش بود تا اینکه یه شب تو خواب دید که انگشتر الماسی رو که دوشیزه مطلعی به اون داده بود از انگشت دست راستش بیرون آورد و تو انگشت دست چپش گذاشت. این خواب برای اون انقدر واقعی به نظر می رسید که فوری از خواب بیدار شد و حلقه انگشتری الماس رو از دست راستش بیرون آورد و اون رو توی دست چپش گذاشت. درست لحظه ای که این کار رو انجام داد، می دونید چه اتفاقی افتاد؟ اون دوشیزه مطلائی رو دید که مقابلش ایستاده. به فاصله از جاش بلند شد و گفت: تو مال منی، برای همیشه هم مال من میمونی حتی مال رو باید توی قبر دفن کنن و همین اتفاق هم افتاد سفر به دنیای پر رمز و راز افسانه ها طبیعت های زیبا و نایاب رودخانه ها و برکه های جادویی قصر های باشکوه و مهمانی های بزرگ شاهانه قصهای از سفرهای دور و دراز با پای پیاده سفر شاهزاده ها و شاهان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 ادساین مهران دوستی